این با این سخنرانی بزرگترین مسئله جمهوری ایرانی را می خواهم کنم جامعه و حکومت در پرهنگ ایران بر پایه خرد شاد قرار داشت نه خرد خشک خالی خرد شاد این چه معنا دارد بحمن خرد شاد بوده است خرد شاد خرد حجوش و خرد جوینده و آزماینده است روشنایی و شادی از هم جداناپچی هستند در فرهنگ ایران جامعه و حکومت استوار بر داشتن حقیقت نیست بر ایمان به یک حقیقت منحصر به فرد نیست بلکه استوار بر خرد شاد است خرد اولویت دارد بر شریعت بر ایمان داشتن یک حقیقت بر داد بر همه این است که درک این مطلب که چرا بهمن چرا آسان خرد چرا خردشاد بنیاد جامعه و حکومت ایران بوده است این مسئله است که ما در افتگوهای پی در پی دنبال خواهیم کرد چون که امروز خیلی بحث از خردگرایی می شود خرد هنوز خرد شاد نیست و در پرهنگ ایران خردی که شاد نیست خرد ناتوان و سست است درست بر به خرد رفتار می کند چون که زنیرو بود مرد را راستی خردی که ناشاد است نیرومان نیست. نیست اینست که این با امروز با این شروع می کنیم که بحث را برای با پیوند به ابخار گذشته مشخص کنیم که این فکر چه اهمیتی دارد اندیشیدن در فرهنگ ایران با خندیدن آغاز می شود نه که یک صفت اندیشدنه باشد که ما دیگران را به خنده بیاوریم یا به چیزهای خنددار بخندیم اینها نه اندیشیدن با خندیدن آغاز می شود. یعنی چی؟ هستی یافتن در گیتی خندیدن است هستی یافتن در گیتی خندیدن است این تلقیه ایرانی از زندگی در گیتی بوده است شما 5000 هزار تا سکولار چه پشت از در یاد بگیرید و حفظ کنید و اینها را بیاورید توتی بار برای مردم بگویید این سکولاریته نمیشود. ولی وقتی او فرهنگ خودش را بفهمد که خستی یافتن در گیتی زاده شدن در گیتی خندیدن است این سراسر مفاهیم سکولاریته را در خودش دارد همون اندیشه که خرد شاد خرد خجوش خرد یعنی خرد نقوبر این منیاد جامعه به حکومت هست این کل بحث سکولاریته و روچند فکری و مدرنیت رو منتفی میکند چون که همه رو در خودش دارد حالا این است که ما میخواهیم این پیوند شناخت و شاهی شادی رو در گوهر انسان بشناسیم آدم و هوا در تورات این چون که قرآن و عبدیان، عبدیان ابراهیمی همه پترت انسان را در همین تصویر آدم و هوا می دانن. این داستان آدم و هوا مسخره کردن آن از لحاظ علمی بیارزش است چون که این مسئله آدم و هوا تصویر این تصویر بیان فطرت و طبیعت انسان است. در گذشته فلسفی صحبت میکردن اما در همین تصویر همه اون مطالب فلسفی رو میگفتند. آدم و هوا در تورات با خوردن از درخت بینش از بهشت از باغ عدن که نماد شادی و جشن است برای همیشه تبعید می‌شوید. یعنی بهشت را از دست میدن وقتی بینش یافتن دیگر حق ندارن در بهشت زندگی کنن بینش و شادی با هم متضاد با بینش نمیتوان در بهشت در شادی زیست انسان با بینشش خیلی نکته مهم است انسان با بینشش بهشت و شادی را نابود میسازد با بینش با بینش سرچشم گرفته از خود انسان نمیتوان با خدا و با حقیقت بود در این بهشت بهش توراتی و قرآنی دو درخت بینش و خلد از هم جدا هستند خلد البته در اون موقع مفهوم نامیرایی داشت نه مفهوم جاب دانگی که ما امروز داریم نامی رایی تازی شبیه از نو است و این سرچشمه شادی است چون که همیشه از نو که کسی تازه بشود شاد است این به معنای آن است که بینش و شادی وقتی که این دو درخت از هم جدا هستن به معنای این است که بینش و شادی با از هم جدا با هم نمی ده زن در, هم در همون بهشت برامون چند شد ببینید این ایده چقدر دقیق بیان شده است بینش انسان رو نو و تازه و سرخط نمی کنه درست وارونه این در فرهنگ در فرهنگ ایران هست. در این جهان بینی در این ادیان ابراهیمی بینش انسان رو نوزا نمی کند چون نامیرایی در همیشه از نو و سبخ و تازه شبیه یا نودایی همیشه است فقط در وجود یهوه و, ال... و وجود یهوه و الله هست که این دو با هم آمیختن ولی در خستی انسان این دو در تضاد با هم در های یونان نیز همی طور هست آ... پرومته آتش را که سرچشمه روکنی و بینش هست از بارگاه زئوس، از علم برای انسان ها می و دوچار عذاب و شکنجه می شود. این همون معناه رو دارد. همچنین یکی از شیزهای شخصیت‌های افتوریی یونان تانتالوس در بارگاه زئوس رازهای خدا را می‌داند. ولی این، چون این رازها را برای مردم افشا می کند دوچار عذاب همیشه می گرده. من بس راجع به این عذابش میخوام بکنم چون که این یکی مسئله خیلی جالبی است که ما هم در داستان هاروت و ماروت در عطار داریم این تضاد شادی و شناخت سراسر ساختار تورات و انجیل و قرآن و تفکر یونانی را مشخص میسازد این نیست که این داستان را باید دور انداخت این داستان ها درست بعدش اشکال فلسفی و جهانبینی های سیاسی میگیرد. ولی فرهنگ ایران درست بر سرندیشه همبستگی شادی و شناخت همبستگی فطری در فطرت خود انسان این همبستگی استوار شده است که در تضاد با فرهنگ یونان و ادیان ابراهیمی است با چیرگی اندیشه های این ادیان و فرهنگ یونانیست که ما نمیتوانیم بنیاد فرهنگ ایرانی خودمون را از نو بشناسیم و بازیابیم و آن را خنده آور و خرافی نیز میشماریم وقتی که, که های غربوط به ایران رو میگیم چون که انتباه با, با, با اون افکار ندارد برای ما موسک به نظر میرسند یعنی که میگیم آقا اینا که خرافت و استوره است و فران و فران برزد علم از یاد از شناسی زردشتی خندیدن زردشت را هنگام زاده شدن هنگام زاده شدن بهمن خدای خرد و بد در این اون هنگام با زردوشت میامزد این, این داستان را به صورت معجزه یک واقعیت استثنایی کاسته و تعریف کردم در حالی که آمیختن خدای بهمن خدای بهمن هم خدای خرد است هم اصل بزم شادیش در حالی که آمیختن خدای بهمن با انسان هنگام زاده شدن دروش بیان همبستگی شادی و شناخت در گوهر همه انسان ها بوده است این ترک و تاجیک و عرب و چینی و و اینها ندارد. افکار ایرانی، افکار جهانی بوده است آمیختن خدای بهمن با انسان هنگام شدن. شدن درست بیان همبستگی شادی و شناخت در گوهر انسان، در فترت انسان، در بون انسان. انسان، سرهنگ ایران میگفت بون، یا گوهر، یا چهره، فترت رو. مردم ایران بهمن را که بون خرد در هر انسانی و فطرت هر انسانی شمرده میشد بزمونه می نامی دن. این را در متون زردشتی پیدا بکنیم ولی در لغتنامه ها میشوانید که اسم بوده است که عوام مردم خردمندان ها به بهمن میدادند بزمونه پیوند دو واژه بزم بزو مونه است بعض همون واجهه است که بعض ازش ساخته شده است مونه یعنی سرچشمه و اصل و مرکز بعض مونه یعنی چی؟ یعنی اصل و سرچشمه بعض ما بعض خودش در کردی معنای اصلی خودش را نگه داشته است بعد به معنای زهدان و انگولک است یعنی تلانگور بزا به معنای جنبش است بزاوتن جنبانیدن است در کردی سوی دیگر بزان به معنای دانا هست خوب دیده می شود که دانایی و اصل جنبش و زندگی در بز مجشت با هم زاده می شود در زادن خندیدن در زادن خندیدن در فرهنگ ایران یک اصل همگانی و کلی بوده و بیجه زایش زردوش نبوده است این را این عمومیت داشته است البته عمومیت داشتن چنین بدهی پدیدهی یعنی اصالت همه مردم این طبعا نفی برگزیدگی زردوش و بینیازی مردم از رهبر و پیشا و پیامبر و مظاهر علاش. برای فرهنگ اصیل ایران زاده شدن همه انسانها را این همانی با خندیدن و روشن شدن و دارای خرد بنیادی شدن میدهند خرد بنیادی چی بود؟ اسمش آسان خرد یا پیش خرد که این به معناش خرد خجوش خرد قائمه به است این که ترجمه میکنن خرد قریضی این برای تحریف است حالا ما بحث خواهیم کرد چرا آسان خرد چرا آسان این نکته رو می‌گذاریم فعلا همین بحث را دوباره این نکته برای ما که از فرهنگ خود بیگانه شده‌ایم خرافه یا ضد طبیعی با, با باور نکردنی و خیر علمی به نظر می‌رسد خنده در فرهنگ ایران چی بوده است چه گفته شدن خستی خود انسان یا گسترده شدن بن جرف خود انسان از شادی این در اصل می گفتن ویستا اخو یعنی گستاخی ولی ما گستاخی را امروز به معنای جسارت و یک نوع از جسارت و بیش از حد خود رفتن می دانیم. در صورت گستاخی در فرهنگ ایران معنای گسترده شدن تخم بن بونه هستی خود بوده از اخو اینها بونی بودن بونه تخم خدا بودن که در انسان گسترش ده بیستر یعنی همون کلمه گسترش میگستردن خدا در انسان میگسترد تخم خدا که این است که شادیش در فرهنگ ایران به کسی یا به چیزی که خندهدار از خندیدن خنده نبوده است انسان از کار یا گفتار توهی از خرد دیگران نمیخندد قصابت نمی خندد. دیگران رو مسخره نمی کنند. بلکه شادی از شکوفه کردن خرد در سراپای وجود خود انسان این میشود شود خنده. انسان نیاز بدان ندارد که چیزی یا کسی را بیابد که خنده دارد تا بدان بخندد. این فقر است. این علامت فقر است. انسان به خودش هم نمی خنده. مگر خودش رو میخواد مسخره کند. نه. خنده شادی جرف از هستی یافتن در درگیتی و از خود سرچشمی زایا شدن است همسی انسان در باز و گشود و روشن شدن در جهان است درگیتی است که خندانه ببینید یک خروار شما تیوره های را نیمه فهم از غرب به ایران وارد کنید برابر با این حرف بسیار ساده که ما امروز مسخره و خرافه میگیریم نیست در یک تصویر در یک اندیشه کل مفهوم کل جهان بینی شده است انسان هستی میابد در گیتی میخندد وجودش شاد است این گیتی جای شادیش این کل سکولاریت است در فرهنگ ایران در گیتی هستی یافتن یا آزاد شدن خندیدن است خونده روند پیدایش هستی در گیتی است خود به وجود آمدن انسان در گیتی خندیدن است هر چیزی در گیتی به وجود می آید می خنده است. خنده شگفته شدن هستی شگفته شدن جان شکفته شدن خرد در اندیشه و شناخت و کردار و گفتاره پیدایش هر انسانی در گیتی خندیدن است به دنبال خندیدن به دیگری یا چیزی خنددار رفتن نشان آن است که هستی خود ما بیگوشاییس است و از, خود، از خودش باز نمیگردد. ما باید از مفاهیم تنگ و ستی و منفی که از خندیدن به ما آموختند، بگسلیم تا دریابیم که فرهنگ ایران چه دیدی از خندیدن داشته است. ببینید ما با این خنده با این خرد شاد است که جامعه و حکومت که جمهوری ایرانی را بیان میکنیم به ما آموختند که آنچه جدی است عبوس و ترشتو و توهو از خنده و گرفت گرفته است ببینید این خردی را این عقلی را به ما به نام خردگرایی و در غرب و در اسلام میباورانند اینها همه خرد عبوسان کولان ریان، سردان زمستانیان عبوسان ترشروان توهی از خنده هستند اگر, اگر توهی از خنده نواشد کسی اونها رو جد نمیگیرد. از من گرفتن از این رو خود را عباس می نامن. ما کسی را جد میگیریم و به او احترام میگذاریم که در تنها نمی بلکه عبوس را گرفته هم هست. من در شهرحال رضا شاه که یک جا با حسرت به منشیاش می, می گرد. من در تمام عمر برای خاطر اینی که من را جد بگیرند نخندیدم و رنج می برد به ما آموختند که به عیب و نقص دیگران باید خندید و در خندیدن آن کار را خار و زشت ساخت و نکوهید ما در خندیدن به دیگری ناتوانی و سستی خرد او را رسوا می و پایمال می‌کنیم و از این آزردن کام میبریم. به ما آموختند که گاه لبخند بر لب بگذاریم و به طور ساختگی بخندیم ولی در درون عبوس و گرفته و جدی بمانیم به ما آموختن که خدا نمیخندد، خندد خدرت نباید بخندد تا از آن حساب ببرد شما یه عکس پیدا کنید از خمینی که بخندد به ما آموختن که انسان گریان زاییده می شود چون از درد می نالد. و با درد زاده شدن بنیاد زندگی سراسر درد گذارده می شود درد در هنگام زاده شدن بون زیستن با درد در سراسر است ولی فرهنگ ایران بر شاروده تجربه کاملا متفاوت از خنده و شادی نهاده می شود بینید ما جمهوری جمهوری ایرانی از کجا شروع می شود یک فرم نیست این ایرانی بودن معنا دارد منش تازه به جمهوری می دهد ما جمهوری را از خارج چهار تا فرمالیت چهار تا مؤسسه فرمالیت فرمالیت فرم وارد نمی کنیم به حکومت مردم که از خرد شادشون زاده شدن روان تازه میبخشد فرهنگ ایرانی فرهنگ ایران برای این تجربه استوار است که اگر کودک هنگام زادن می گرید ولی خود روند زادن او روند خندیدن است و کودک نیز از پرت شادی که به دیتی می آید می گرید. این گریه است که نماد اوج شادی است پرت شادی گریه می شود. ببینید این جمهوری ایرانی می شود شاخصه بی فرهنگ ایران پیوند شادی و شناخت با هم در گوهر یا در فطرت انسان است فطرت انسان شناخت خدایی مقتدر و بستن عهد تابعیت از او نیست. بلکه یک خود در شناختن شادی زندگی او با خدا عهد این نمیبندد که من نوکر تو هم. من از تو اطاعت میکنم بلکه چی رو خود رو در میابد دکه چی؟ که شادی رو در زندگی میتواند بشناسد و میتواند پیریزی بکند. در انسان نیروی نهفته است که در پیدایش میتواند با شناختن شادی و جشن در گیتی بیافرینند در بجر انسان نیرونی خفته است که در روند شناختن در جستجو کردن شاد و خندان می شود خرد و خنده که پیدایش شادی سراسر هستی انسان است با هم در انسان پیدایش مییابند روند زایش هم روند خندیدن و هم روند روشن شدن است یک تخم که از زمین بیرون می آید هم سبز می شود هم روشن می شود برای این خاطر می گفتند فطرت انسان سبزی و روشنایی است برای همه خاطر این سبزی در فرهنگ ایران چنین معنایی داشته است که الان ها را از سر زنده کرده است روشن شدن و سبت شدن سبت شدن این است که یک پیراهان سبت شوند. سبت شدن معنای این است که بینش از من می میروید بینشی که من حکومت و جامعه را میتوانم اداره کنم سبت یعنی این چون که شدن یعنی از خود روشن شدن از خود بینا شدن روشن شدن و خندیدن دو ربند ناگسستنی از همان روشن شدن یا افروختن در فرهنگ ایران با اندیشیدن و رسیدن به بینش و شناختن این همانی داشت هستی یافتن در گیتی همزاد خندیشیدن و اندیشیدن است این تجربه که ایرانیان شادی و شناختو زندگی در گیتره این ستارو به کردار پیوند ناگسستنی از هم در پترت یا بون انسان در به کلی با تجربه های یهودیان و یونانیان و بودایان و اسلام فرق دارد فرق دارد به این تجربه است که سراسر گستره فرهنگ ایران را معین میسازد. این ایرانی جمهوری ایرانی یعنی شاخصی استثنایی، این معنا دارد هر جمهوری نیست جمهوری ایرانیست چنان که دیده خواهد شد خود واژه خندیدن درست به معنای زاییدن است مثل واژه بزم و بد. این رو بس رو من بعدش یه خورده خسر کننده است ولی میآورم چون خیلی مهمه. در یکی از توفتگوهای دیگر واجه خندیدن به معنای زاییدنش انسان هستی انسان می در درست شدن رویدن بالیدن یعنی می خندن آفرینش اصلا آفریدن خندیدن است این تجربه ژرب که درست در این همانیدن خندیدن با زاییدن صورت به خود گرفته است. نشان چیز نشان جهش نیروی سرشار زندگیست که در خود نمی و می خواهد از خود فرار زد و در لبری شدن گشودگی خود را می یابد ببینید این به کلی با قرآن پردارد الانسانول کنوت در قرآن است یعنی انسان سه زمینش حاصل ناخیز است زمین است که هیچ ازش نمی روید خب دقت کنید این تجربه را از انسان و اون تجربه از انسان این تجربه فراخی یافتن نیروهای سرشار و آکنده و در هم پشردن که درد گذر را در روند دایش نه تنها نادیده میگیرد بلکه احساس هم نمی کند حالا نه تنها این تجربه در این کلیات است. همین تجربه را ایرانی چپس در همه حواست و طبعا خرد خود میکرده است در بسودن لمس کردن شنیدن دیدن بویدن مزیدن زندگی این آتش زندگی از روزنه تن تن می میشود او در حس کردن و شناختن و اندیشیدن این تجربه را داشت که های آتش فوق زنده جان از روزنه های تنگ حواسش که سراسر تنش را احاط کرده است گذران. و در گذر از این تنگناها تبدیل به روشنایی میشوند و به همه پیرامون پرتوب میاندازند همه دنیا رو شاد می کنن. این فوران زبانهای آتش و دگردیسی همون تحبل آن به روشنایی از تنگنای هوا اینم زادان هست درکی از تنگنای هوا شما وقتی که چیزی را می میچچید می لمس می کنید. چوله های آتش جان از روزنه های در تن زاده می شود شناخت و اندیشه تحول یا دگردیسی گرمای سرچار زندگی از روزنه های تنگ حواست به روشنی گرم است در فرهنگ ایران روشنی همیشه گرم است پرتو پر یعنی تابش تابش شعای تابش تابش، تاب، تاب، یعنی گرما در فرنگ ایران پرتو همیشه گرم است از روزنه های تنگ هواش به روشنی گرم این چون چرا؟ چون که با درک فراخ یا گست, در ش... گست درد شبیه همراه است شادی آور است انسان در حس کردن که جدا ناپذیر اند... اندیشیدن و شناخته است گسترده و شاد و خندان می شود در پرنگ ایران در گفت شدن حواس انسان با محسوسات پیدایش می ندانید که در مغز در یک کنج از بالای سر ما پیداش می نه این ایرانی خرهد را این چیز نمی خر خرهد در حواس در دنیا چه گفته می است این سرندیشه که اتصال حالا ببینید این سراند اینشه برمیگردیم به اصل آفریدن چون که درک مفهوم آفریدن اساسی است این سرندیشه که اصل پیوند یا جفتی یعنی اتصال و امتزاج باشد این روند آفریدن پیوند جفتی اصل آفریدن بودن در فرهنگ ایران اختران، اختران، امتزاج اینها همه روند آفریدن بودن در این روند آفریدن جنبش و روشنی و شادی با هم هستن حالا مفهوم آفریدن را از اینها می شود آفریدن در ترکیب این ستا با هم است. ما امروزه مفهوم و وارونه و بسیار دور از اس از, از کلمه آفریدن داریم اسلام الله را خالق واحد میداند و غالبا واژه خالق را به غلط به آفریننده برمیگرداند میگویند اهورا مزای زردوش جهان را آفرید طبعا ما نیز به همین روان یک فرد یا شخص را آفریننده فلان کار و فلان چیز می شماریم. ولی درست این واژه بر ضد معنا و محتوای اصلیش به کار برده می شود. چرا؟ آ فریدن. این آ یک پیشوند است. اضافه شده است که می شود کرد. فریدن. این واژه از فری ساخته شده. فری چیست؟ فری همون؟ فریست. کلمه پری و فری؟ یک کلمه یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن. پری، پری یعنی جفت شدن و معنی یعنی دوست داشتن. پری در اوستا در جاهای دیگر معنی دوست داشتن. در سانسکریت هم. حالا هم همین واژه پر، حتا در لغتنامه ایرانی پر می‌بینیم که معنای جفت هم دارد. و از این گوشه این همون غیر از اینی که خود پر یک ساوه است که دو طرفش مو از این معنای جفت در همونجا هست. این که هم همین کلمه پیر انگلیسی و پار آلمانیست که جفت شدن باشه اینها به معنای پر اساسا یعنی جفت با هم جفت شدن با است این که سی به زال پرش را میدهد اینا خیال ما میخیال میکنیم یک مو از پر اطنش کند و گداد به زال ما تمام شاهنامه را به این ترتیب مسخره میکنیم وقتی بعد به قبقب میاندازیم که ما شاهنام شناسه این کسی به سیمرغ به زال پرش را میدهد به معنای آن است که نیروی اتصال و امتزاج یا دوستی و انبازی و همبقی را که گوهر خداییش هست به زال انتقاد میدهد یعنی نیروی آفرینندگی را به زال میدهد تا همیشه این پرداشتن تا همیشه زال یعنی انسان بتواند مستقیم با خدا با سیمور پیوند بیا و با او بیا میشد. این پردادن ببین او کتاب نمیداد، شریعت نمیداد، آموزه نمیداد، پیام نمیداد که برو به اون و انها اینها رو برو. او پر میدهد سیمور پر خودش رو که اصل پرواز و جنبش هست هستی خدا اصل هستی خدا به زال یا هر انسان میده. زمین انسان از این پس پرنده یا بالدار می شود تو مرغ چهارپای تا به آسمان بپری و احتیاج به نردبان نداری یعنی به پیغمبر و واسطه و ولی فقيه نداری به عبارت اسلامی معنای این هر چیست یعنی ذمیر انسان معراجی است هر انسان توانا پرواز به اصل را چهار نیروی زمیر انسان که از تخم او یعنی اخو، اهو اینها چهار پری هستند که انسان را توانایی میبخشند که همیشه با سیمرغ پیوند بیابد. این سیمرغ اصلیاش از ارتا بوداد. دادن پر، دادن نیروی پیوند پیوند آفریننده است. این جفت آفرینی پیوند آفرینی این یه است که ما فراموش کردیم از اتصال و امتزاج از مر که مر یکی از اصطلاحات این بوده است، امر، مر یا سنگ، یا یوق اینها از اینا آفرینش اجاز می شود از سنگ، این واجه ها همه معنای اتصال و امتزاج داشت است. این دادن پر نهادن گوهر خدایی خود در درگهر انسانیست مردم مرد تخم یعنی تخم گفت، یعنی تخم خدا انسان تخم آفریننده خداست یعنی از خودش می آفرینند از این رو انسان مردم مرد خوانده خانده می شود. ببینید من این آفریدن این معانی داشت ما این, این است که اگر توجه بکنیم فطرت انسان فطرت انسان فطرتش، این اصل اتصال و امتزاج است که روشنی و بینش با هم از اون میرویند انسان که اخو و بوده چهار نیروی زمیر از اون میرویان هم. که همون چهار پر باشد از این رو دالمن خوانده میشد دالمن به باد گفته میشد هم به باد گفته میشد هم به گوهر گفته میشد هم به بوم به جقد گفته میشد به کتاب یونکر مراجعه کنید دالمن گوهر انسان این چی دالمن این چهار این سه معنی رو داشت حالا گوهر انسان یعنی چی یعنی نیروهای زمیرش یک طرف بازند باز اقاب باز, باز که به با اوقاب میگیم معنی اصلیش باز چیز اقاب نبوده است. باز به پرنده میگفتن باز وای باز است، یعنی رام خدای رام باز است، انسان در گوهر انسان رام هست بوم که امروز ما مرغ منحو تو شومش می دانیم این این همانی با بهمن خدای خرد داشته است پس گوهر انسان پرنده یا اصل پرواز و جنبش است گوهر انسان جغد است یعنی این همانی با بهمن دارد به سخن دیگر مرق بهمن یا خدای خرد سامانده و اصل شادی هست جغد را که این همانی با خدای خرد بهمن داشته است برای این خاطر منحوششون رو ساختن برای این خاطر تبیید به بیرانه هایش هست که در ما که دنیا را آباد کنن تا خرد بهمنی را در فترت یا گوهر انسان زشت و منحوش دادن ببینید ما با این تهمت ها و توهین ها گوهر خودمون را عطبین میبریم خدایان خودمون را عطبین میبریم پرهنگ خودمون را عطبین میبریم گوهر انسان باز است پرنده است و باز که همون وای به باشد، نام رام میباشد که گوهر جفتی دارد و مبدع زندگی هست. و خدای زمان است زندگی و زمان جفت همان و اصل پیوند و میان و اصل جستجو است این رام در عوصت می میبینید اصل پیوند است، اصل و میان است. همه چیزها رو همه ازداد رو با هم پیبند میده اصل است هست میکرست. نام من جوینده است. خدای زندگی در ایران نامش جوینده است یعنی گوهرش جوینده است. گوهر انسان در اثر پرنده بودن در اثر بای بودن در اثر جغد بودن اصل جفتی هست دو پر یا چهار پر یا شیش پر یا هشت پر همه نماد اصل جفتی بودن گوهر انسان هست. این هست که میبینیم کوروش گای وقتا با چهار پر گای وقتا با شش پر گای وقتا با هشت پر نمایش داده میشود اینها معناشین معناش این که اچیل است، خرد بهمنی دارد معنیش داشتن چنین پری نماد معرادی بودن گوهر انسانی رفتن به معراج در فرهنگ ایران نه محمد است نه بیژه هر انسانی رابطه بی واسطه با خدا دارد خود واژه جوق که مرق بهمن خدای خرد است در اصل در بوده یوقتای بود است جوق جو همون کلمه یوق است به معنای جفت یوقتای یعنی مادر یا اصل جفت جغد به معنای اصل جغدیست برای این خاطر مرغ بینش بوده است برای این خاطر به بهمن، با بهمن این همانی داشت برای همین خاطر هست که آتن شهر آتن نشانش جغد بوده است چون که شهر بینش است، شهر فلسط است این در اثر همین اصل جغدی اصل سبزی و است. سرچشمه روشنی و جنبش و شادی است دوستی و اتصال و پیوند دو یا دو نیرو یا دو کس یا دو گروه با هم است که جنبش و روشنی و شادی می این بود که این واژه فرید که از همین فرید ساخته شده است فریده به معنای دوست و محبوب است این واژه سبب تبدیل به فرید شد و درست؟ این نام را بعدا فرید به دجال دادن گفتن نام دجال دوژ آل این زن خدا سیمرغ آل شد دوژ آل یعنی سیمرغ توافق. زن خدای زایمان که در فرهنگ بعدی قاتل کودکان شده است خدای زایمان که جان میبخشد تبدیل شد به خدای کشنده کودکان اسم این خدا فریده بوده است یعنی دوست و محبوب وقتی اسم این چون که نمیدانستند میگفتن در جال اسمش فرید است البته فریددین اتار یا سایرین که اسم فرید ورمیداشتن به این معنای بی ترجمه میکردن ولی در عصد به معنای دوست و محبوبه بوده است که همون از واجه فرید پریه آمده است و این آ روند آفریدن رو این روند زاده شدن شاد شدن را نشان میدهد هر هرچند تا اندازه از موضوع خود که بررسی معنای آفریدن باشد باشد دور افتاده ایم ولی این نکته را یافتیم که گوهر انسان یا فرد در اثر همین اصل جفتی سرچشمه جنبش و روشنای و شادی هر سه با هم است ببینید خیلی مهم است جنبش و شادی و شناخت یعنی روشنی هر تا با هم از انسان پیداش می آبن. این است که گیاه و جانور و انسان از پیوند آسمین با زمین آفریده می شود تخم زندگی که آسمان افرانده و پراکنده می و ترتن قرار می گرفت آتش خونده می شود. که در اصل معنای درمی داشت این روند حبوط نبود مثل اسلام بلکه روند همبستگی دو قرین یا دو بال یا دو پا با هم بود در فرهنگ اسیل ایران داستان حبوط انسان نیست تن سه معنا داشت و در سه تصویر گوناگون مجسم ساخته میشد تن هم معنای زهدان یا تقدان داشت که هنوزم در بسیاری از گویش ها به همین معنی به کار برده می شود هم معنای آتشتان و مجمر و آتشگاه داشت هم هرچه زمینی و از زمین بود تن رو نامیده می شود. حالا این اصل زندگی در برابر این سه تصویر از تن چه تصویر گوناگون داشت اخو یا اخو یا آتش و اصل زندگی از یک طرف متناظر بازهدان بود یعنی نوتوه بود از یک طرف حبه آتش در آتشتان و مجمر بود برای این خاطر زال وقتی میره و دیدن سیمور به فراز کو سه تا مجمر آتش می‌بره. این معناش از یک طرف متناظر با زمین بود که بعد رو دانه و در زمین کاشته میشه بود. و اینها علامت این است که این روشنی و شادی با هم از این اختران ایجاد میشه و تن و آتش جان مانند دو پا یا دو بار یا دو چر در یک گردونه رابطه قرینی با هم داشته نه رابطه حاکم و محکوم نه رابطه حاکم و تابه نه رابطه خالق و عبد پیوند یا اختران نطفه با زهدان با هم خدا با انسان با هم جفت میشد. یعنی تخم خدا در انسان با انسان جفت می شد پیوند زغال با آتشان با هم می آفرینه. پیوند تخم با زمین با هم می آفرینه. این را هم آفرینی یا همبقی یا نرسنگی می نامیدند که تبدیل شده از بعدش به نرسی هیچ آفرینشی تک نمی شد بلکه هر آفرینشی بر شالودی همبستگی دو اصل با هم بود خدا هم هنگامی میتوانست بیافریند که که در گوهرش جفت باشد این بود که اقتران نام روزها با ماها بیان جفتی و اصل آفریننده بودن آن خدا بود مثلا فروردین روز از فرد ماه یا دیروز از دیما یا محروض از مهمان اینها رو جاش میگرفتن چون این بیان این بود که فروردین که ارکا فرورد یا دی باشد گوهر جفتی دارد و در این روز این گوهر در شادی و جشت صورت به خود میگرفت این را همین اینها پری میشدن, فری میشدن. این, مح... این بحث را ما در گفتارهای دیگر ادامه خواهیم داد و این اصلی که این جفتی این اقتران که اصل آفریننده هست سرچشمه سه چیز است یکی جنبش است یکی شادی و روشنی با هم از این است که ما با خرد شاد سر و کار داریم بهمن این اصل جفتی که ما بحث خواهیم کرد و این شادی یک صفت, صفت, صفت خرد نیست بلکه این گوهر ذاتی خرد است که از خرد جدا ناپذیر است ما خردی که بدون شادی باشد خرد ناتوان و سست است که درست بر ضد وجود انسان در کار است خرد بدون شادی خردی است که زیان آور است خردی است که انسان را از بین میبرد